امروز ما میلیون ها طفل داریم که از درس و تعلیم و مطالعه و کتاب و گفا محروم هستند اگر یک کسی یک کم هم فکر بکنه نباید خدا در وقت محفل روسی خود به یک شیطان مبدل بکنه. این المبدفرین کانون اخوان شیاطین کسی که اصراف میکنند زیاده میکنن، یا برادرای شیطان هستند اول عادت شیطانی هست که یک افتر پیش از آروسی ما چی مجبوریت داریم که باید کارت که باید سی رو بیاید چل رو, بیا رو, بیا رو بیا مصرف شود یعنی چی ضرور است؟ اگر تو بیست زیاد داری مسلمان هستی در اون وقت کارت های که این نی کارت های بسیار ارزان، دیر که در قل جانم مخابل خبر شد که آروسی هست می خدا را خوش بسازی اما سیر روپی سر یک کار پس میکنی 20 روپی اگر دو تا کتابشی در روپیگی بخری، و 5 روپی از او یک دو دانه قلم بخری یک قلم پنسل یک تا قلم خودکار و او را ببرید مکتب طفلک های غریب و بیچاره که مکتب میرن قلم و کتاب چمرن بر از و توضیح کنی و که کار. اینجا تو در صفه ملکه ها قرار میگیریم اما اگر کارت سیرو بگیم چیل رفیگی جور میکنی؟ برادر شیطان شدی. اصراف هست، زیاده رویست، ناروا هست خدا رو خفه میسازم من چرا مثلا؟ من چرا؟ داروسی خود کارت پیجار بگی جور میکنم؟ از خود سوال میکنم، چرا؟ چرا؟ چون شیطان برای من میگه که تو باید از دیگا کردن؟ بالا باشی. بالا باشی تو باید انتخاب بکنی که مردم بگه که اوه اوه ای کار شدیدی تنها سی بلد یا نیم متر کار تزید امی که تو میخوایی که از ما کدر کار تاروسید خوبش باشه خب شیطان رو میگفه میزد گفتم من آدم چی کسی آدم شما من احترام بکنم یه از خواب پیدا شده و مست آتش پیدا شده ایمون جنس ما قوم ما و تایفی ما و شخصیت شما ازی که در بلند است در بهاران سبزکه ای روید به سنگ خاک شد و تا گل بروید رنگ کدام سنگ هی دیگه سرزو گل لاله باشه خاک گل لالا می خاک است اصل آسل می ده خاک است که برای موتو غذا می خاک شد و تا گل بروید رنگ رد اینالا انسان که افتخار میکنه اینمین افتخار تا کارت انسان از صف ملایگه ها به صف شیطان میکشنه در غیر از کارت فلانی نفر است دانی پن روپیه دانی سی روپیه بکتارین کارت است در هدفش چی است چی از که جانم مقابل خبر شده که ناروزی فلانی به نهان در وقت کارت نوشته کردن باید خدا را فراموش نکنیم دیگه اگه مسلمان هستن بعد که ایک رو توضیح کردی یک شب پیش از آروسی نام شب خینه هست شب خینه شب چی هست شب از که در دست داماد خینه رو می آیا به مرد جایز است که خینه بکند؟ بعضی از علماء میگن که خینه مخصوص زن هست و در حدیث شریف است که لعنت خدا هست بالای مردایی که خود مشابه می سازن با زنها و لعنت خدا سر هایی که خود مشابه می با مردها خب وقتی که مرد سای خدا خینا میکنه یک رواج است افتش سر برنج بختک و مردم رو بخوای شو بازور رقاصه ها را بخوای اگر جوانای جریان یک دینی بی ایمان بخوای یکی ای خدا و پیغمبر خدازی آروسی و ازدواج رازی میشه پس اگر ما مسلمان هستیم و با ایمان هستیم چرا همین مصرف شب خوده خدا ببینیم که 30000 روپیه است با خدا امروز در افغانستان کسایی هستند که شبها ها به یک لبنانی خوش کیتیاز کسایی هستن که اگر برش یک کیلو برنج بیدید سرش جشن میشن یک کیلو گوش برش بخری برش جشن میشه. اونجا انسان از گشنگی میمارن و اینجا ما بهم افتخار بخوریم چیز فرور است؟ اینمی را مبذر میگن مبذر کیه هست؟ انسانه که مصرف بجای میکن و کسایی که دامادم مجبور می سازن سازن که نه تو باید این خینه رو بکنی تا تو باید هشت سیر نو سیر برنج برای ما بیاری بر شب خینه این پدر آروس و خیانت میکنه جنایت میکنه کار ناروا میکنه غیرتی میکنه بیمانی میکنه ضد دیگه عمل کرد خدا و پیغمبر خدا میکنه ضد فرمان خدا حرکت میکنه آیده کدام حدیث شریف کدام مولوی صاحب گفته که بر داماد شب خینه است و بر آرز شب خینه است باز بعضی کسا هستند که صاحب سه چهار موتر را نصفش نصف و دنگ دنگ دنگ دنگ میرند خانه از و آرز خیلی باز خینار را و شما را مثل مسیحی و مسیحی عادت دارند که در دا سر چیزها شما را روشن میگرند تا کهی ما مثلا برای واجهای دیگران در زبانت همدگو یا در دلت عیبه باطن کافر و ظاهر مسلمانی چی سو؟ چی فایده که انسان بگویم من مسلمان است و مومن استم باز نصب شوید که تیل موتر ای رایی سرگردانی مردم بازی خینار اگر تب آدم اونجا برده ادیقا دادم پرسان کنن امی اسراف هست نیست اسراف هست اصراف دگه چی هست خودمیه اصراف هست و دامات بیشاره مجبور بیسازم که باید قرزدار شود در چی گف دستای عزیز و دستای زور اخینه بکنیم و شوی خینه بکنیم برادر عزیز در دین مقدس اسلام شوی خینه وجود ندارد لطفا اگر این کارای زشت رو این اصرافم میکنیم به نام دین مقدس اسلام عرد اقل دین مقدس اسلام بدنام نسازیم به ای, ای الفاظ زشت و با ای های زشت و با ای فرهنگ زشت دین اسلام دین بسیار است. و پیغمبر صلی الله علیه وسلم بر ما میگه که یسرو ولا تعصرو او مردم آسانی کنین و سختی نکنین و بشیرو مردم مژده بتین ولا تنفرو مردم متنفر نسازند از دین اسلام مردم متنفر نسازیند سر مردم سختی نکنیند و در حدیث شریف پیغمبر سلام میگه که بهترین نگاه ها نکاح است که دو اون مسارف بسیار کم باشه جوان قرضار نشه وقتی که برای کسی ببینی خود خوب مسلمان هم میگیرن مسلمان خود است مسلمان خود است که وقتی که گفت خدا و به پیغمبر خدا برش گفته شما بگه که سمع و طاعت لله و لرسول اسلام چی هست؟ تسلیم شده خدا یا مرد دسته این بالا هست؟ به با اوامر خداوند و به ارشادات پیغمبر صلی الله علیه وسلم تسلیم هست و ما کان لی ولا و پیغه خداوند متارجل جلوه همه که شایستن نیست برای یک مرد مؤمن و برای یک زن مؤمن ادا قد الله و رسوله امره وقتی که در یک چیز خدا و پیغمبرش فیصله کرده باشن ان یکون اللهم الخیراتون امرهم که اختیار داشته باشن در کار خدا و پیغمبر یک قسم فیصله کنن بازی بگه من این قسم میخواهم اختیار نید <immm> <immm> و من يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا و, و کسك معصيات خدا و پیغمبر خدا را میکنن گمراهی آشکار کرده پس ما خداوند میگه یا ایها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافا عمرم در اسلام به شکل کامل داخل شونن نیست من نماز میخونم آه نماز میخونم روزه میگیرمอาسبوع روزه اینجا بسیار مسلمان هست های نکاه هست؟ نکاه سنت هست. نکاه سنت هست؟, سنت هست؟ نماز صبح میگوه هم درکات در سنت است. آیا آت درست میشه که ما بگیم نماز درکات در نماز سنت صبح میخونیم؟ در رکات اولش خاندنهای اول میره میکنم؟ نیت کردم بخوام درکات در نماز سنت صبح باز وقتی که نیت بسته کردم باز, باز باده دو چی کنم؟ باز بگیم دازمون با زیبا وطن دامده بابا با وطن استاد استرگو بالا واخلم در دلگات دومش شر میکنی ولی در دلگات دومش هم خاندانه گل زمان میکنم. آن تو گفته ما نماز سنت صبح میکنی پس وقتی که تو دلگات نماز سنت صبح نیت کردی باید این نماز از اولش تا آخرش به طریقه کی بخونی؟ به طریق محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم در غیر از چرا میگی لا اله الا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله هدف دین توحید محمد و رسول الله چطور میتونم به توحید برسم میگه از طریق پیغمبر صلی الله علیه و آله خوب خب. نه نه صحیح نه او ما فقط دار ما فقط داری درک واست سنت صبح پیش از صبح دور فرض درکار میگه بله سنت است بله با چه طریقه میگه با طریقه الله علیه و الله هم سبحانك اللهم باز میگم الحمد لله رب العالمین چه اسم خدا باید چه قسم بگیریم باید پای خدا چه قسم بگیریم دسته خدا چه قسم بگیریم باید دست ما باز باشه یا باز باشه كلش یک یک یک یک فکر خدا میگیریم های نکاح چی است هم سنت است النکاح و من سنتی, سنتی. پیغمبر سلام بگید که هم سنت من است و من راقی به ان سنتی فلی زمینی کس که از سنت من روی بگردانه امت من خب آلخه این سنت چطور میکنیم بگی سنتا هم سنت هم باید به طریق پیغمبر صلی الله علیه سلم بکنیم در سنت هم باید نکاحی خود در مسجد بگیریم مردها را در مسجد بخواییم اعلام شد از طریق مسجد جز، جز. پیغمبر صلی الله علیه سلام چه قسم نکام میکرد؟ ای آیه کدام روز شده که پدر دختر در زمان صحابه کرام فرمایش و تل داده باشه؟, باشه یا گفته باشه چل سیر برنج بیار باشه. یا گفته باشه تو اول لسطه که باز دختر خود ایتم تو بگید یک چل سیر برنج و پیچه و سیر فلان نی خیلی تو پدر ظالم تو خدا ناتر. زد سنت سنت عمل میکنی و ای دامات بیچارا سنت به جای و این فامیل از اینا پس چرا نامش از سنت میمانه و در بین سنت گمراهی و دلالت است از این خاطر ضرور نیست که یک مسلمان این که دووتل آروسی میکنه این که مصرف زیاد میکنه و باز وقتی که دووتل رفت، باز میگه سه دو تل کارسی کردی که بدون ساز نمیشه باید غذایش بسیار قیمتی باشه باید مردم های پولدار خبر شد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میگه شرط طعام طعام الولیمتی یدعاله الاغنیه و یترک الفقراء اینا رو طعام ولیمه میگه بدترین غذا غذاهای ولیمه هست ولیمه چی را میگه؟ ولی من قضایی که از طرف داماد و اختیار داماد و مطابق توانه داماد بدون اینکه که کسی دیگه اون مجبور بسازن. از طرف دختر خیل ولی من نیست در خانه دختر خیل نان خوردن نیست دختر خیل حق نداره از کسی برنج بگیره دختر خیلی حق نداره که مثلا 200 نفر خود 200 نفر, نفر فرمایش بده نه تو حق نداری وقتی که تو پدر دختر حق نداری و امید چل سیر برنج یا 200 نفر رو اوتل مجبور ای میسازی و ای گوشت میری ای میگن که اینمی برنج رو که گرفته اینمی گوش رو که گرفته اینمی 200 نفر را, که را مجبور ساخته بعض علمای ایره غصب میگن غصب هم میگن که یک نفر درا موترش استاد کردن و زور جیبایش رو خالی کن و یا ایره رشوات میگن بعض علمای میگن رشوت هست. چرا که رشوات چیره میگن که کارت به شکست بند باشن او بگه ما کارت نمیکنم تا که برای من این قدر پیسه رشوت این اینمی هم رشوت هست و در حدیث شریف هست که لعنت خدا هست بالای رشوات. خود و در تفسیر آیت احکام کلمه لعنه میگه لعن و من رحمت الله لعنت چیست؟ راندن رمضان از رحمت خدای عزوجل بنا اندر خور از رحمت خداوند طرد میشن و کسی که از رحمت خداوند طرد شد رحمت خداوند جنت خداوند بی ایمان از دنیا میره اتا علماء میگن که شما برای کافر زنده هم لعنت نگوین. برای کافر زنده لعنت نگوین. خاطر که تو راضی میشی با کفر ازو. یعنی یک کسی میگه لعنت سر تو باید؟ مشخص. او فلانی نفر سر تو لعنت خدا. یعنی که تو کافر بمیری. تو بی ایمان بمیری. از رحمت خدا دور مید. حالا ما میگیم تا بر کافر زنده هم مشخص نگوید باست که مردار شد، من مرد باذ باد او جایز است که آدم بگه مثلا لعنت خدا سر به جهل، لعنت خدا سر به لهب، لعنت خدا سر فرعال اما اگر زنده باشه بر یک کافر دعا میگیم که خداوند هدایتش کنه. اما به شکل آدم میتونه بگه لعنت خدا بر ظالم لعنت خدا بر خائن لعنت خدا به وطن فروشا، لعنت خدا بر کسی که مثلا سر فامیل خود متوجه نیست و بی‌حیا و بی‌ستر به بی‌ستری و بی‌حیایی بی خوشحال. این علی برادر عزیز پدر <تصفح> مسلمانه که, دار هستی. هستی. که تو دختردار هستی کجاست ایمان در این لحظه‌ای که تو چهل سیر برنج از مردم به زور ما ها باز میگی آه. من علل دارم آه. من فلانی دارم ما دارم آه. مردم میآی میخوره مگر بدبخت انسان کی هست بدبخت انسان میگه کسی است که آخرت تو خدا در مقابل دنیای خود از دست بده از او کده بر بختر است او کسی است که آخرت خوده در دنیا دیگه کده از دست است بر اینجا دیگه کسی میخورد؟ گوشت دیگه کسی میخورد؟ وی در روز قیامت تحت پشت سیر بار کده اثر <تصفح> از پل سرات پلسرات تیز میشه و من یغنون یعتی به ماغل یوم القیام به کسی که فریب کاری بکنه و غلط کاری بکنه با اونم چیزی که است رو با چل سیر برنجه بشت میکنی دو سیر بی بسیرام چو در روز قیامت باز پیش بود و خدا اگه سال در پلسر سری کسی هست از پلسران؟ پلسران چی هست پلس این طرف جنت است، میدان هشت اونجا جنت است. در سر از دوش پل, پل از میدان هش را هر کس باید از این سر پل تشک بره و جنت. زیر پل چی است؟ دوزه است. اینال تو فکر کنو که اشتاسی در پشت بار باشه؟ قرص خطا بیخویی. باز که از این پس خدا بالا. چرا؟ خاطر از اینکه مداریسی دختر مردم نام دارید. این بی است؟ ای به ایمانی، یک آلم، یک روز میگو، ده به غیرتی ده، ده به ایمانی ده، ده نرواده چه وعده کهی؟ با غیرتی، در زوی به وعده که چونه پیسی مسرفه این؟ خو، در زوی به وعده که شل منه بخیر، خو خیر ده غیرت، اون زو خیر، پین زمانه ده لون به وعده که حمله که باید پوست چی ریخ جا لور عبد و زوی تیر منز فرق تجاهل نید چرا ما ما کم گرفتیم که باید مثل اون دوا وارد در وطل کنیم چرا ما ما کم گرفتیم مثل نصارا وارد به خدا یهود نصارا هم ایزشت کار زشت نمیگرد که ما میکرد. تمام گندگی ها به ما رواج میتل لیکن خودشان آرسیشان بسیار ساده است شما بر سلی کنین در بسیاری آروسی از پارتی میگن پارتی رو گفتیم چی میگن با تحریف دارن برشید مگه پارتی بارد از محفل است که در اونجا باید کس نشینه اصطادکایی یک اگه گلاس کوک یا پانتای یا شربت میخوره؟ خلاص اقشش چند کس ندارن وقت خدا مردم بیره پنده خدم اونجا استارت میشن در صد نیم خود سار میشن نیم ساته سار شدی حال ما نه رواجه اهل دنیا را گرفتیم نه رواجه اهل آخرت را گرفتیم ما یک چیزی هستیم که لا اله اولای و لا اله اولای نه طرف کفر رفتیم و نه طرف اسلام نه او شد شد طرف اسلام میریم خدا اسلام خود اوتالو و ای مسارف و ای یابان است داماد حق دارن داروسی خود وقتی که آروس خدا برد جای و جای شد باز دل شد ولی من میکنه یک زب هم میکنه کرک توانایشت داشت اون خوب که نداشت خلاص آروس خدا گبرد نکای خدا کرد خلاص کل اگه میره پنایتان به خدا این یک مصرف بجایی مصرف دیگه خلطی این بیغیرتی رس اگه که لونگی میپشه لونگی غیرتی داروسی بر دامات لست داشته میگنه که دادانه لنگی لستانه پتکه بازیر بابیش فلانیش باز میزنه شملی خودن بالا میمانن گر ندانی دیره تیر چون در شب آروسی دختر مامدی باز میدانیم که در شب آروسی دختر بازی لنگی با غیرتی رو 20 تا پیران برای فلانی و فلانی از برای خدا ای دامات بیچار از کجا بکنن امروز زنا رواش پیدا کرده تجاوزهای جنسی پیدا کرده و تمام روز ما میبینیم در خبرها میشنمیم فلانی جای تجاوز جنسی صورت گرد فلانی جای تجاوز جنسی سورد گرد گناه زیبه دوشی کیه؟ و دوش اونمون پدرها و مادرای هست که خوب خودمو تدعیم میگیرن لکن مانه ازدواج اولادشان میشن دو سال سی سال یک جوان نامزاد میمونن آرسی کردن نمیدون در خلال دو سال سه سال که این قسم میمونه هر گناهی که دختر یا پسر بکنن سر مادر و پدر از دختر است و بسر کسی است که ایران از امیر واجا پشتیوانی کردن و زمینه نکاه سنت بر او از اون سخت میسود و میسر من بعد از اون درد, درد. جور لباس او ظالم خدا نتره, نتره،, نتره. اینی خودش اصراف است که تو باید سر از این جوان باید ده جور لباس برای آرست بخیری و او توانایی ازیر نداره آیا نمیشه نمی که پدر مسلمان برای زبویه که برادر این دختر مولاد شما هست خیر از دو جور سه جور هر قدر که تانست نه باید اینی قسم باید باشه و آن قدر این در سر تکه خریدن و سر لباس خریدن و سیت عربی و سیت طلا باید اتمن باید باشه در سر از یه آنقدر اینا ماکم میگیرن مثل که اگرمی چیزا نبود بیخیل قیامت زرشند و باز میگم امت محمد صلی الله علیه سلم کار شیطان بینکنی نامت ولی گر ولی باشد چونین لعنت بر ولی تو نیگه من دوست خوبه هستا ولی خدا هستا امت رسول الله صلی الله علیه وسلم هستا در اینجا امتیتت از کجا شد؟ خاطر برادرهای محترم پدرهای عزیز شما کوشش بکنید که زمینه نکاح را برای جوانان در آروسی ما دی نشده آروسی رفته همین شب که تیر شد در منطقی فازل بید. رفتیم که چار پنج تا برادران مسلمان با ایمان آروسی اسلامی کردن نکایشان اسلامی بود محفلشان اسلامی بود چند نفر از علماء صحبت کردن یک مسابقه سیرت گرفتیم بعض از مسابقه سوالش جواب گفتن تا دوازده بجشه و محفلشان هم جوان ها مرطالیم بسیار زیاده یاد گرفتن هم ریش یاد گرفتن هم مجلس سوابی شد هم نکای از هم کلگی دعا کرده، هم خدا خوش شد هم پیغمبر خدا خوش شد. و هم چندین جوان دیگر آمادهگی نشان دادن و خیستن گفتن که ما آماده هستیم که آروسی های خدا به طریق اسلامی بگیریم از ساز و از رقص و از مصرف های بیجای و از بی بیجای و از اصراف بیجای و از این رواج های زشت ما کوشش بکنیم که خدا دور به دا وقت خب، آله پیش ازی که محفل شروع شد، خوب شما ببینید. ده حدیث شریف نیه که داوود داخل جنت نمیشه. وقتی که داوود داخل جنات نمیشه. داوود که، دوست میگه کسیست که در عربی دیوست دا میگن دال یا واو سی میگه کی است که امرای خانمش یک مرد نامحرم خنده کنه قصه کنه نظر کنه و هیچ چه نشد خب ما پیش از یکی آریسی شروع میشن خانم های خدا دخترای خودم دا پانزه نفر یک جای کرده ورای میکنین میکنیم دارایشگاه و می دارایشگاه دا اونجا با چندین قلم اون آرایش میشه خوبی عزار عزار این ده هزار پانزه که این مصرف میشه این خود کلش رفت در جیب شیطان این خود کلش در دا اسراف داخل شد و وقتی که از اونجا بیرون میشه به خاطر که مویاش خراب نشه چون مویای خود شکل داده دیگه اولو شکله که چادر سرش پرتی شکل خراب میشه لویش اگه کمک کارق کنه کوه زیاره خراب میشه دیگه باید بیخی از یه قارش حق قولاش معلوم میشن پیرانش ژاپنی و گل سرش ایتالیو و بوتاش فرانسوی پربد الهندی دوستانی باز میگه من مسلمان هستم، ما مسلمان هست کجا شد مسلمانی در این وقت که یک کسی خانم خدا یا دختر خدا به ایش یکل کرده و در نظر مردم و بر مردم پیر نشان میتن و اینا رو لوش و 카메라 ما اینها فیلم بردارا هم. هم و فیلم بردارا دیگه به خانمش بیا در خانمش آره از دیگه آ بیچاره آ محرمش شد دیگه من قسم مکاسی کردم پایان شیش تو بالا شیش تو از زیر بغل عروسی چیه گوییدم خانوم که میدونه در اج جای ما رفتم گفتم این لندن کجا میره مگه گفت فیلم لندن ها فیلم بردار است گاییده خونی زنانا میدونه گاییده خونی مردانا میدونه گاییده خونی عروس میدونه هیچ کسی هیچ چیز نمیست. و بخی محرم شدن درگاه خب کسی که خانمو خودن آرایش کردن و در محضر عام تقدیم نکن این چیست؟ یعنی ای میره دیاست میگن اینمی در حدیث شریف میگه که اگر انسان نکار, نکار نکرده پیجا فیصد ایمان وقتی که نکاح میکنه ازدواج میکنه پینجه ها پیصد ایمان دیگه هم تکمیل میشه اما متاسفانه کسایی هستم که درمی شب اولاروسی هم پینجه ها پیصد ایمان ها که سابقیش هم از بین میره بغیر از خازنهای زش و ناروان و کفایی هم بغیر فسق و فصاب و کفت و بیدیدی دوت بکنه بگر کل اگر مثل کل و کارهای با دعوت و بزن مخدره عطبه سلی و خطبه ای خواننده کلمه کفر میگه و نمیخواد مثلا میگه که یا خود مسلمان شو یا مرو مسیح اینا رو کس بنصیحت خودش شده و علائق باب کفرت کفر راضی شده و کفر گفت و امر برش چیه در بین عظیم محفل در بین عظیم محفل ار قدر که شب چیز شدن میره شاو پخته شدن میره وقت در وقت رای میبینیم که اما دیوارایی که در واسط اوتل چور شد، این دیوارا آساسا سوال داشته میشه اختلاط شروع میشه او باز انسانای هستن آباز. که اونمون ناموس خدا که امرایش نموجن نقاب بسته کردن، ای رو قطع بچه بواسطه بچی کارخونه پولیش بچی خدا, خدا،, خدا، اونجا... استاد میکنه، این پولیش دیگه بچی کارخونه ده این جسایب بیادر خودا ده یا یورا استاد میکنه که از اینا عکس میگیره و مزی سرش لاج گردنش لاج تختیپ پشش شش میشه قولایش لاج آستیناش از گاچ کل از هست. از این که دیگه دین نور توسیل بی غیرتی پجوان که کی پیدا که هیچ کلانه پیدا که او بیا مون مسلمانان و یا بیا مون دیر غیرت لرون چیه تسول غیرت به درخشپکی؟ درخشپکی چه مسلمان خزر نام احرام سری سردده دیگی او حالت فونبرداری که اکسون نیستنه دلتا بیا مون بیا و مون ایمان در و مون غیرت لرون مون تقوال رو دلتا خب بیا غیرت نسته دلتا خب بیا ایمان خلاص اینا تا نیمه های شب رقص هست شرابخوری هست زناکاری هست توقوب زنا هست در اینمی شب آروسی چندین ششم چرانی و کپایی هست که باز دخترای زیادی مردم ها در اینمی شب ها رفیق و معشوق ها و عاشق فیدا می کن باز فدر جگر گریان می کنه که دخترم بردن درگیش میگه نامزاد مبدلانی گریختان خود که نامزاد تا اشت قلم آرائش کنی در بیرون ببری خیلی جوان دیگه پیدا میشه میگه چون که ما چی میگه نامزاد گرفتی بیر مرسای که اندار دیکر است باز دیگر از نامزادش میگرش باز که گریخت باز میگه نامزادم گریختان دخو دخو خود دخواه تا در پیش چشم را انداختی و من اقرده ان ذکری فا اینه لهو معیشتان دنکا خداوند میگه وقتی که از قانون من در زندگی از قانون من سرپیچی کردی هر کسی که از قانون خداوند و از حکم خداوند سرپیچی کنه فا اینه لهو معیشتان دنکا خداوند رزو زندگی بسیار سختی را نصیب میکنه دختر از بیمان میگروزه بچه انسان بیمان ناموس مردم هم میگروزه ده خانه انسان بیمان بی صبح و شام جنگ است و داوا هست ده خانه بیمانی بی اختلاف است اگر حاکمیت قرآن باشه حاکمیت دین باشه زن متدین باشه مرد متدین باشه دختر متدین و با ایمان باشه بچه متدین و با ایمان باشه با اون جنگ میشن دوج داوا هست دوج بدبختی هست دوج بازی کارا میشن از مقافات عمل غافل مشو گندم از گندم بروید جوز جو تو خودت وقتی فتنه و فساد هن. خوشی میکنی نتیجه فساد و فتنه اینمی فتنه و فساد است که بالاخره زندگی تو تبا میشه بازی چی میکنم؟ باز هم چون ما بسیار مریض هستیم بسیار مریض هستیم که در وطن خود مشکلات بسیار زیاد داریم یک نفر رو بگویی که بچه یکی در زیر خیمه درس میخوانند پیسه دارسی بر یک, یک دو موتر خشت برازو بخار که یک سنو شود کمرش مشکلند در این مدسید میخوان که یک مدرسه حفظ قرآن شریف مدرسه درس ریاضی مدرسه درس فیزیک جور بکنیم امی درسه رو بخوان با از وقت اطفال ما کمرش مشکل دا متره را, را میگیریم باز دا این طرفش معتر دیگر سیکوریتی را میگن و بازی طرف موتر سکل سوارات و رضی ها پیسه میدیم برکل نزی چی؟ کل نزی به خاطر چی میکنیم؟ به خاطر از که ما شعار ما شعار شیطانیست که انا خیر من هو من خوبتر استم من خوبتر استم وقتی که گفتی که من از دیگر که از تو کده خوبتر هستم. در قطار شیطان خود داخل کردید در دا غیر از او انسان مسلمان همیشه خود از کل لگی که در و کمتر فکر می کن. حضرت عمر ابن عبدالعزیز وقتی که خلیفه مسلمان ها شد می رفت تکه را می, می, می, می, می پالید از او که در ارزان تکه نمی بود او را می پوشی. از که تکه ارزانبای نمیبود او را می به خاطر ازی که شکر اون رو مستکیه ارزانبای کردن و جواب, جواب از اون هم در روز قیامت دادن بسیار مشکل است سمالات و سالان یومه ایدن شما باز در روز قیامت از پرسیدن نعمت ها پرسیده می که این نعمت پول، این نعمت وقت این نعمت زندگی این اسرافی بیچای ای را بی کار ناروایی که بیخی کار اون و بی ها و مردمای کافر هستن که زیر پای یک مخلوق یک حیوان ذبح کردن در زیر پای عروس مرغ ذبح کردن بعضی کسا فواز اول راوچیده میگن این ما گوسفند ذبح در زیر پای یک انسان از این که در منکر و ناروا و بی هیچ نیست کاری که بود پرستا بود که زیر پای بت های خود حیوانات را تو می خیزید مرغا میری و فورا زیر پای یسو پایش پای بیرون نکلی تا وقتی که مرغا زیر پای یسو زرحانه نکردیم یا یگانی که که کلانکار است میگه ما گوسفند زرحان می میکنیم و فلانی چرا این ناروایی که؟ چرا خدا را خفا می سازیم در معطل آرزی خود؟ چرا خدا را خفه می سازیم؟ چرا قرآن از پیش خود آزرده می سازیم؟ چرا یک میلیون شهیر سر خونش پای خدا میمانیم مانیم؟ و به این که اونا گفتن حکم خدا تطبیق شوان خاطر تطبیق حکم خداوند خون خود را اختاندن و ما تو امروز می ها انسان هر روز و خاطر تدبیق حکم خداوند خون هزارا انسان میریده و دشمن های اسلام مردم بمبارد میکنن مردم و میلشان هایشان خراب میکنن در زندان ها میبرند وقت مین جذاب میدن کوتاخلفی ها کل زی از کل نذیه هست و خاطر ازی که حکم خدا تطبیق شوند و ما تو خدا مسلمان هم میگیریم لکن با وجود که میگه مسلمان هستیم اینجا حکم ک را میکنیم اونجا میگیم که مصرف جیاد کردمه مجاهد هستم شبنامه توضیح می‌کردم این کارها را می‌کردم باز این جکامت سیاست‌های خود لباس‌های نازک نازک پوشانده و به زور عکس‌های از نارا را میگیریم. اگر یک کس بچوکه که برادر دمیخانه بین سیاست را نری ناروا هست یک دفعه دا نغرس می دادم مقابل کلگی که تو دشمن ماست تو خیر هستی تو میخوای مجدسمو خراب چرا بابا میگم ما بسیار خوب مسلمان هستیم کجاست مسلمانی؟ مسلمانی خوب که انسان باید در حالت خوشی خدا را پراموش نکنه بازی دو, دو عروض داماته که داماته که تا به صبح خانم خود را در پالوی استاد کرده، با لباس بسیار نازک. در یک حدیث شریف است که کاسیات و اگر اقام بشت که یک دیار زنا هستند که تن لباس پوشیده اند، ولی با وجود ازی که خودشان ظاهرا لباس پوشیده هند یا, یا لچ هستند برهنه هستند پوشینده برهنه یعنی پوشیده برهنه چی مانا که؟ هم لباس پوشیده در ظاهر ولی در حقیقت از دیدگاه شریعت اسلامی در حکم برهنه هستند آسینایش از داچه است در سرش چادر بسیار نازو که گاچیست که مویایش معلوم میشه اینه لطفا متوجه باشن که یک زن اگر دا داخل خانه خود پیش به حارم خود شوهرش برادرش بچیش چادر اگر بخیر نپوشه هم پروانه نداره. اما در جایی که میره در مقابل مردای نامحرم چادر گاش میپوشه در جمعه کاسیات و ناریات میره به خاطر ازی که چادر گاش موهای انسان فت نمیکنه. و شوهر که برای خانم خود چادر گاش میخره و او رو بازن مقابل مردای نامحرم وقتی که میشینه با چادر گاش چیز نمیگن باید بفامه که اینجا بسیار خطر نارد است این حال صاحب ای دامات وقتی که این لباسی که پشتن اگر لباس چسب باشن کاسیات آریاد کاسیات آریاد کدام برده ماه گفته گفتن میشن که لباسش بسیار چسب است که اعضای بدنش معلوم میشن فکر کرده باشی که اعضای بدن خود رنگ کرده یکان زنهای کمپی را بین که صاحب برجست پشیدن اشق پیری گرد به جنبت سر بر شهیدائی زند ایناله... یا یا کوتا هست سینای کوتا هست دامن کوتا هست یا بغلای از این سر چاکای هست این لباس پنجابی که ما بره خانما و دخترهای خود میخریم آیا ای از نگاه شریعت اسلامی جایزه؟ وقتی که میشنه تمام اعضای بدنش معلوم میشه خوب مسلمان است، خوب حاجی است، خوب صحیب چندین دفعه حج رفته لکن دخترایش خانمش، کالای پنجابی می پشن در اسلام کالای پنجابی هست وقتی که میشی میشینه اگه خوب کالای پنجابی نیست توش روی میمونیش، بغلایش کار میدونیش وقتی که پیشنه چارزانو تمام اعضای بدنش معلوم شد در جمله کاسیات و آریات است که لباس پیشنه ولی لچ هستن آدم مسلمان، برادر مسلمان، شفر مسلمان هیچ وقت کالای پنجابی بره بره فامیل خود نمی کرد. کالای پنجابی کالای دوهای پنجاب بود دیگه. از نامش فیداست از اون دوهای پنجاب این کالا را رواش گوه ولی مسلمان های قسمی لباس, لباس کاسیات و ناریات کسی که لباسش کوتا باشه. یا بسیار چست باشن یا بسیار نازک باشن با وجود زکین لباس بشیدن در جمله کاسیات آریات، باز این قسم لباس ما مثلا میریم از بودل ها در خیات ها و یا از مجلای خارجی لباس ها رو میگیریم این بر خانم خود و بر نامزاد خود جور میکنیم بازی رو در مقابل مردای نامحرم استاد میکنیم و با سبا وقتی که این کار خلاص کردیم با تا 12 وجی شو ای زن چندین مرتبه فلم برداری شده و محفل از یا لعنت خدا نازل شده در محفل از یا غضب خدا نازل شده تا صبح رقص بوده ساز بوده خواندانه ای زشت بوده مردها و زنا با هم اختلاط کرده تمام روز گناه گناه گناه شراب خوری فکای بی جای کفای بی جای غذاهای سب اسراف بسیار زیاد اینمی انسان های مبذر و اینمی کسایی که بازی سب سوبکی میمیرن لا اون با ترس از بازار سعی میکنن پیش شایدشان شیره. شایدشان چی میگه میگه و هو افسوس که دستکایم خالی. اگر نکردم دو شام شیرم، امی کردن عرضش ما رو میکنند. لعنتی خود تو باز پیش میمی، بریم پیش شایدشام برکت بدن. باز شاید شیره برای برکت برکت؟ شاید شیره بیچاره اگه برکت دادم میتونست، که از بیشش خود گردن عرضش رو چرا که این که تا دوازه بای شب خانم خود پیش روی کلیگ این رخصانده خوهرهای خود رخصانده از های فامیله خود رخصانده این خوسید دوازه بای شب در پیش رویش تک مورد دوشی از جنات خدا محروم شد از رحمت خدا محروم شد بازی میخذر بازم این پسعه من بریم پیش شاید شمشیره چرا خدا فریب میده چرا خدا فریب میده چرا خدا ف زبت کار خدا حرکت میکنیم باز اونم کارهای زشتی که زبت دیگه حکم خدا از باز او را میاریم فکر میکنیم که برای ما بسیار کار خوب کردیم بسیار رواج خوب تدیل کردیم باز بعضی رواج ها بعضی مردم های بسیار بغیرت بعضی زن ها و مرد های بسیار بی ایمان اعداد دارن بعضی رواجای زشت هست که حتی انسان گفته نمیدونه که در شلوغ وقتی که قدام عروس هم میبرن بعضی‌ها از بیمانی و بی‌وجدانی و بی‌غیرتی از یا قد چیزایی هست که حتی بعضی چیز امورای مخصوصی که بین عروسی داماد است ایره هم بر مردم نشان میده از این که بعضی بیمانی از این که بی غیرتی از این که دفوسی به خدا وی تاریخ بشر بوده باشه که ما به نام رواج های کارا نمیگه حق خانم بالای شوهر است و حق شوهر بالای خانم است که وقت ازدواج میکنند قصه مسائل سری و خصوصی خودا باید برای کسی قصه این هم یک دوسی است کسی قصه خانم خودا و چیزی که با همرای خانه حد کردن بخیزه برای مردم قصد کنند. این هم یک نوان گمراهی و بیدینی است ولی بعضی کسا به حساب رواش کارای میکنن چیزایی رو میشنمیم که شاید شیطان هم این که بورا نافما میشه، این که شیطانو میگه، بورا شما تو شیطانی هستین که با خدا خاطر کارون ما درس دادین دیگه والا من فکرم براسه شیطان میگه نمی کاری که شما کاری هیچ فکر منام میرسه من, هم <تصفيق> <تصفيق> من از شما یاد گرفتم شما استادای من هستین ان الباده دیگه اور اسی خلاص باج رواج دیگه شا سلامی این یک بی‌غیرتی دیگه صاحب دو تا پنجا تلانده قرار میرسه خانی آروسخه like. کرای موتر مسرف کلانی فیانه چی گفت شاه سلامی در کدام کتاب هست در کدام سنت هست و این تو ماکم گرفتن و تو شخ ماکم گرفتن که اگر ندید دامات بیچارا خجالت میکشن میشربن میگروزن لیکن سب ده نفر از تا پایش گرفتن و از سب کشکش کردن کجا میبریم تو شاه ما امت ما همه صلی اللہ علیہ وسلم امت کمپیرا شدیم کمپیر کم برکن؟ خلاص دیکن کمپیر میگه نه برین برین شا سلامی چشش؟ چی کسی؟ آنه صاحب کنیل اگه صاحب امت کمپیرا باید گفت کمپیر کس نشکن از او گذاشتن بعد از که دسته روز تیر شد اینمی پدر بیغیرت و اینمی مادر بیغیرت با بسیار بیغیرتی و با بسیار بیمانی بی امون پیسیرک از نامات گرفتن بازیر صاحب یک چند تاگر زرف پلسکو گرفتن یک دیگر بخار است یک تلویزیون تلویزیونک یار کلش را گرفتن بازیر میانن باز آنقدر بیغیرتی و آنقدر بیخیه ایست بازیر کلشان ما یک ما زب و ما زکرمه که جیز در طرف سر تست یعنی بر ما هم کل چیزا رو تو میخری به بیچاره پیسہ میده یا با زور میبرنش سر کل رو خوش میکنن با صبح میگه که صرف اینی چایوش نکلی نکلی بر آوردیم اینی زر بر بر اینی کالا رو بر شووردیم اینی فرش آوردیم گفتم میرم و با بسیار بی‌غیرتی و بیماری مردایشان تا بیرون رسالت چاوردن صرف یک محتر کالا کوکی از کجا اومد خود دل اگر گرفتی را از دل اگر په یک لگی شد چط... زیر زدی یک لگی پهشانا مال خریدی آوردی کلی چیزهای بدل بدل خریدی آوردی مم. با دیر سر نام بنامه... روز تخت جمی. جمی. جمی یعنی ما غرق هستیم مردم افغانستان مم. ایوازه که دین دی. بالا باشه و رواج زیر باشه که اگر رواج بخالف دین شد با رواج اوز دو نه ما ای قسم سرچپ قسم این رواج بالاست دین پایین است همیش دین پای است همیش احکام دین پامال است و یه باید رواج هاست تا جایی که رواج است ما دین رو تح میکنیم جایی که رواج نبود بازا کدام کار دینی رو دیدیم در از کلش رواج هاست و این رواج ها سبب زنا میشن سبب گناه میشن سبب بدبختی میشن سبب از این میشن که جوانای ما قرصداشون و دنگ داشن، ولی با وجود از این هم بسیاری کسایی رو که خوب خود دین دار میگیرن دیگه دا اینجا با ایمانش کوچ میکنن اینجا باز از دین و از اخلاق و از شریعت و از سنت باید، مره گپنید ای در و در حالی که در دین مقدس اسلام یاپون نبوده و ازدواج اسلامی بسیار ساده است نشو خینه نداره نه در اوتل داره نه سچ طلای عربی داره نه تحتجمی داره نه این کارهای زشت و نه شاد سلامی به یاپا داره خلاص نکاح هست باد ازو اگر داماد و لیمت داد با بر خانم خود چیزی گرفت و محر بر خانم خود داد به اندازه توان خود میتن خلاص اینجاست که باز مسلمان ها میتنه به شکل درست و مثبت زندگی بکنیم ای رواج ها دختر بیچاره تا تا آخر عمر با تانه های خیز مبتلا میسازن همیشه سرش گرد زده میشن همیشه, همیشه در اونجا برش تا داده میشه و همیشه زندگیش خراب است و آغاز زندگیش به بدیها هست و کسی که به این خصمی ازدواج میکنن در ازدواج ازی چون حکم خدا را قبول نکرده و سنت پیغمبر صلی الله علیه و را تطبیق نکرده در آروسی ازی هیچ برکت نیست اولادی که از به این شکل پیدا میشن اولادی که بالاخره به ولزی که باز خدمت مادر و پدره بکنن اولاد از اینا هم اولادی بسیار زشت و بد و خراب میباشن که اینها باز به درد فامیل خودام نمیخورن سبحان رب العزهه عما یسفنون و, و سلاما علی المرسلين والحمد لله رب العالمین تا تا